بسم الله الرحمن الرحیم کلاستاد اسلامی یه لیگان آب و بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین الله صل عنا بحثمون جایگاه قواعد استظهاره در حل مسائل مستحدثه بحث اول این است که مسئله به عنوان مسئله مستخدسه چگونه تعریف میشه؟ فارق بین مستخدسات از غیر مستخدسات چیه؟ نگاه کرده باشید توی کتاب من اونجا توضیح دادم مسائل جدید المسائل المعاصره المسائل المستجده النوازل الفقهيه المستحدثات به تعابیر مختلف میاد اهل سنت میگن النوازل به وقتی کوفار از گذشته بودن اینکه یکیش سنی و دهو تو م... فقه نواظلی فقه نواظلی که دوستان تعریفو کردن میگفت این علمای شیعه هم دیگه نگاه میکردن چی چه فقه جدیدیه تاسیس شده فقه نواظلی نازله یعنی حادثه اونا با اگر خواستی جستجو کنی عنوان نوازل جستجو کنی یا مستجدات یا المسائل المعاصره علمای ما کتاباشونو به عنوان المسائل المستهدست چاپ کنن این کتاب کلمات سدیده ملاقای آیت الله مؤمن مرحوم کلماتون سدیده خیلی کتاب جالبیه به لحاظه مسائل مستحدثه الله مؤمن مرحوم مقالات آیتالله مؤمن هم اگه بیدا کردی چه اصلی ها شد چه ترجمه ها شد در حل مسائل مستحدثه خودش یه روشمندی خوبی داره یعنی سبک مئیار مال ایشون مال آیتالله هاشمی شاهرودی مرخون اینا سبکش میار. خب النوازل المستجداد المسائل المعاصره المسائل المستهدسه یعنی مسائل لم تکن منسوسه ولا مذکوره في کلمات فقه ها به این دو سفر سنافته یکی اینکه که نیست یکی که در کلمات فقها ها تعرض بهش نشده اگر تعرض بهش بشه حل و فصلش بکنن همه بهش بپردازن و بحث بکنن و اینها دیگه سابقه پیدا میکنه سابقه پیدا کرد از مستحدثات خارج میشه مثلا الان بیمه مسئله مستحدثه هست یا نیست؟ بیمه حدود 100 صد ساله اومده زمانی که بیمه اومد از مسئله مستدسه بود چون نمیدرستن عقد و تحمیم چه نوع عقدیه خیلی علما به مشکل برخوردن در بحث بیمه انا تحقیقات زیادی ما راجع به بیمه داریم چون محرکت الاراب مثلا آسخات دستگاه مکبرت و صوت همین میکروفون بلنگو که صدار بلنگ مکبرت و صوت تلفاز تلویزیون استفاده از تلفاز اینا یه زمانی که آمده بود فقه ها بحث نکرده بودن مسئله مستدسه بود ولی الان سابقه پیدا کرده الان که سابقه پیدا کرده مستحدثات زمان ما نیست مستحدثات زمان ما چیه؟ مثلا شرکت های هرمی نمیدونم ارز دیجیتال بازار بورس اینا میشه بنابراین المسئله مستحدثتون املا تكن مستحدثه امرو نسبی چون امر نسبیه به خاطر این است که ما کتابی داریم مربوط به مستحدثات زمان خودشه مثل جامعه و شتات میرزای قومی توش مستحدثات زمان میرزای قومی بوده الان بعضی از اونا برای ما زیاد مطرنیستش دیگه قدیم می شده و لذا مثلا اهل سنت کتابایی دارد الفتاوه الهندیه الفتاوه الگازیخانیه الفتاوه تاتارخانیه فتاوای علماشون بوده تاتارخان قازیخان متوجه. یعنی فتاوایی که علما به سلطان وقت در زمان سلطان وقت مسائلی پیش می از علما می برسنن. خیلی چیزای جالبی هم تو شرسا نوازل زمان خودشون بوده نوازل قرن نه نوازل قرن ده نوازل قرن یازده نوازل قرن نوازد النوازل و والمسائل و مسائل المعاصره فی زمان نهازا فی زمان نهازا مثلا در زمان حاضر شما ارز دیجیتال دیژیتال راجبش چی میگی؟ شبیه سازی انسانی راجبش چی میگی؟ شرکت های هرمی رو چی میگی؟ چون هیچ محبود نبوده دیگه راجع شرکت های هرمی. یا بیع زمانی قبلن محبود ندود. نبوده یه نوع چیزیه چیزی غربی درست کردن تو دامن ما انداختن حالا این میگرسن آقا بیع زمانی ویلاهای های شمال که مثلا قیمت یک ویلا حدود مثلا 100 میلیارده به شما میفروشه کل ویلا رو به شما میفروشه برای یک هفته به مبلغ 100 میلیون میگه اینو من خریدم اجاره ندادم و مشارکتم نیست کلش به شما میفروشه حسه هسه در ملک نمیشه حسه حسه در زمان انتفاع از ملکه در زمان انتفاع از ملکه یعنی شما برای یک هفته مالکی مالک کل ششتانگی ششتانگی ولی در بر مدت یک هفته بهش میگم بیعه زمانی حال واقعای بیعه چیه یه چیزی درست کردن آوردن جلوی ما خب دیگه حالا ما که درستش نکردیم که دیگران درست کردن دیگه یا مثلا جلاتین خوکی از خوک چربی خوک رو میگیرن فرآوری میکنن می می می می می یه ماده به دست میاد این ماده رو میان توی بستنی میزنن میان توی شکلات میزنن میان توی تنقلات میزنن یا اسم علمی هم داره روی فرمول اون چیزا می نویسن روی شکولات ها روی بستنی ها می نویسن جلاتین خوکیه پاک و نجسه قبل چیزی نبوده جدیده فناوری غذاییه یعنی محصولات جدیده شهر مستهدسات مستهدسات زمان نهازه بعد به دو قید میشه لم تکن منصوص فی الادلت لفظیه و ولم تکن مذکور فی کلمات فقه ها مسئله میشه مستهدسه حالا برای مسئله مستدسه چی کار میتونیم بکنیم حل مسئله مستدسه الان چون دوره شما راجب روش شناسی اجتهاده حالا من خوفم از اینه که اساتید مختلف دوت میکنن هر کی میاد یه نوع روش میگه این روش ها با هم دیگه تنافی پیدا نکنه شما تو قد تو زیرتون اون آقا به یه روش میگه اون آقا یه روش میگه چجوری ودر بشه من نبینه حالا دیگر اصلاح چی گفتن و چی میگن ولی اونی که الان من میگم بر اساس نوع کارمه یعنی کتاب و مقالاتی که دارم بر اساس اون میگم و یه چیزی تقریبا میتونم بگم اصول و قواعدش گشتره که به یه علم خب چند تا مقدمه لازم مقدمه اول این است که ما قاعده کمال شریعت داریم یعنی ما من واقعتن الا ولها حکم، از هیچ مسئله نیست مگر این که حکمی داره نمیشه بگیم مثلا فلان مسئله این اصلا مراد فوقه ها نیست جوابش علمیه، جوابش مدیریتیه نداریم همی هر واقعی یک حکم شریع داره بنابراین علم فقه یه علم عرض کنم که پر ادعاییه یعنی هر جا هر از جوانب زندگی بشر فقر درش نفوذ داره فقر درش ورود داره صدا و سیما و شو و موشک و هوا و فضا و محیط زیست و بهداشت و درمان و فردی و حکومتی و سیاسی فرهنگی اقتصادی نظامی مالی جزئی کلی دنیوی اخروی هیچ محدودیتی برای برود فقر ما نداریم. به خاطر چی؟ به خاطر قاعده کمال شریعت. ما من واقع تنیل دا ولها قاعده کمال شریعت ثابت شده به عدله عقلیه و عدله لفظیه. عدله لفظیهش تو اصول کافی عدله عقلیهش این که خداوند نه آجزه، نه جاهل نه بخیله به سه صفت در خداوند عدله کمال شریعت ثابت میشه. این مقدمه اول مقدمه دوم قاعده ای داریم به نام این قاعده که میگم به عنوان قاعده تیداش نمیکنید ها قاعده رو اه اه چیز استیادی قاعده قاعده استیادی یه قاعده دیگه داریم کمال ادله شریعت یه کمال شریعت داریم مقام ثبوته یک کمال ادله شریعت داریم ولی مقام اثباته ولی مقام اثبات یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت یه فقیه دستش خالی نیست نمیشه شما یه مسئله جلوی فقیه بذاری فقیه بگه من نمیدونم چی جواب بدم نمیشه همچیزی نمیشه یعنی امکان نداره بی جواب باشه فقیه نمیتونه در مقابل مردم بی جواب باشه فقیه باید پاسخگو با باشه دیگه نمیشه یه جایی یه مسئله شما مطرح کنی اون بگه در این مورد من چیزی نمیتونم بگم چیزی نمیتونم بگم میگم خب آقا ترتیب عدله که بلدی ترتیب ادله حسرش عقلیه میگه یا دلیل کاشفه بهش میگن دلیل محرز دلیل محرز یا لفظیه یا غیر لفظیه لفظیش یا نص یا ظاهره یا دلیل مجمله یا دلیل ساکت یا دلیل محمله بالاخره ادله تکلیفش معلومه چیه دلیل است دلیل عقلی ای پیدا کردی دلیل عقلی هم همیشه مخرزه دلیل عقلی مخرزه پس یا دلیلی کشف به حکم میکنه موجوده دلیل مخرزه حالا قطعیه سنیه لفظی غیر لفظی هر مدلی هست اطلاق عموم نصف فلانه چیه یا دلیل محرس پیدا نمی اصول عملی است اصول عملی هم پوشش میده یعنی مجاری اصول عملی رو شما نگاه بکنید خود اصول عملی مجاری جوری ترتیب داره یعنی اصول با هم تعارض ندارن یه جایی نیستش که بگید هم برایت بیاد هم استثاب بیاد نتیجه برایت اینه نتیجه استثابونه تهارست بدهن نه ندارم ترتیب دارم این اگر این نشد اون اگه حالت سابقه داشت اگه به بدبیه بود اگه مقروم به این بود اگه فلا بود ببینید ادله رو حالا ترتیب ادله رو اگر خواستید مدل خیلی خوب خشنگش رو ببینید تو هر قصانیه ببینید مدلی برای ترتیب ادله تو هر قصانیه ببینید فهرست فهرستش نگاه کنید این ادله شریعت هم ترده. پس یه قایده هم داریم به نام کبال ادله شریعت من اساس این قایده عدله حاسخ بوست یعنی ما من واقعتن الا ولها حکم ما من واقعتن الا ولها دلیلون علالحکم الا ولها حکم الا ولها دلیلون علالحکم حالا اون دلیله چیه؟ حالا میانم سراغ دلیل ترتیبال عدلتیه حالا میانم سراغ دلیل دلیل چجوریه؟ دلیل اکثر موارد قریب به اتفاق موارد دلیل ما دلیلیست نقلی یعنی آیه و روایته عقل مستقل پاسخ مسائل شریر رو بگه ممتنع نیست ولی چیزی هم ازش در نمیاد یه موارد محدود در میاد اونم خیلی کلیه مثل ظلم الیتیم از ظلم قبیه العدل و حسن یه چیزی کلی ازش در میاد و علت هم اینه که خداوند عقلو تنها میذاره حتی در مواردی هم که دلیل مستقل موجوده شاره مدد میکنه پس هم وارد دلیلی از شریعت دلیلی از کتاب و سنت دلیلی نقلی موجوده حالا یا قرانه یا سنت سنت یا قولی یا فعلی یا تقریریه ولذا عمده ادله عدله شرعیست خوب توجه کنید عدله عقلی رو گذاشتیم برای نیم درصد کمتر از نیم درصد شد عدله شرعی عدله شرعی هم امدش, امدش. امدش. یعنی نوود درصد دلیل لفظی شرعیه لفظی لفظی یعنی لسان داره لفظ داره یعنی قرآنه که لفظ داره روایته یعنی شما میگید حکایت فعل معصوم میگه پیغمی مثلا این راوی میگه که من فرزند رسول خدا رو دیدم یه یعنی نفر اومد پیشش یه چیزی گفت حضرت ناراحت شد یعنی چجور دلیلیه؟ حضرت ناراحت شد حرف نزدا چیزی نگفت حضرت نگفت چرا این کار رو میکنی؟ چرا به هم دیگه کمک نمیکنی؟ یه یه نفر میاد که وارد تو شهر ما چند نفر گرفتارن چند نفرم پول دارن این پولدارا عین خیالشون نیست مثلا میگم ها. حضرت یه دفعه در هم شد ناراحت شد حکایت tie حکایت فعل معصومه حکایت فعل معصوم لسان نداره راوی که نقل میکنه لسان داره ها لاوی که ولی حدیث نیست اون لفظ مال راویه فرزند رسول خدا نیست اکثر ادله شرعی که به درد ما میخوره ادله شرعی لفظیه خب اومدیم سراغ ادله شرعی اکثر ادله شرعی لفظیه ما هم این سومین مرحله این مرحله اول اکثر ادله شرعیه مرحله دوم اکثر اون شرعیا لفظیه است مرتبه سوم اکثر اون لفظی ها ظهوری یعنی نصف شما کم داری اجمالم کمه سکوت و اهمالم هم که بزار کنار آره موارد اکثر پس ما مشتهد چیزی که تو دست مشتهده و مشتهد یعنی اون چیزی که مشتهد باش کار میکنه اون ابزار اصلی مشتهد ظهورات ظهورگیری فوتوفن اشتهام در ظهورگیریه هرکی در ظهورگیری موفق تر باشه اشتهادش موفق تره حالا شما میده آقا ظهورگیری سخته؟ بله ظهورگیری سخته هم کبرویین هم سغرویین همی که اواحی این ظهور به وضیحت میرسه یا نه چون این ظهور معارض داره این ظهور قرینه منفصل داره این ظهور قرینه منفصل داره این معارض داره این ظهور عقبیه این ظهور صنفیه این چه نظوریه هم مصداق ظهور مهمه مصداق ظهور الان بعضی از اختلافات در مسئله مستحدثه مربوط به این اختلاف در زورگیری، زورگیری از ادله لفظیه یعنی یه واقعی در خارج موجوده منم یه آیات روایاتی در یه طرف دیگه میشناسم حالا میخوام این چتر آیات روایات رو بیارم رو سر این مسئله بذارم که بهش میگن انتباق میخوام این مسئله خارجی رو زیل آیات روایات ببرم که بهش میگن اندراج این انتباق از بالا به پایین یعنی عدله رو منطبق بکنم بر این مسئله و مسئله رو مندرج بکنم تحت اون عدله اینجا اختلاق در زورگیری پیدا میشه نمونش مثلا این آقا میره شرکتی شرکت میره آقا جنس من اصلا ست تومن میارزه ولی من به تو میدم بیست تومن حالا یه دفعه کمش نکنم اول یه مرحله میگم گم 80 تومن می 100 تومنه به تو میدم 80 تومن برو برای دو تا مشتری پیدا کن. میری میره دوتا مشتری پیدا میکنیم میگه باز بیشتر مشتری پیدا کنیم بهت میدم 70 تومن بعد میگه اون مشتریات هم اگه برن مشتری پیدا کنن بهت میدم 60 تومن گروه دوم از مشتری Rose اگه برن گروه سوم از مشتریات پیدا کنن به تو میدم چه تومن گروه سوم از مشتری ها برن گروه چهارم از مشتری ها یه وقتی جنس ست تومانی برای شما در میاد یه تومن بعد اون گروه دوم ده نفر بودن هر رفتن ده تا مشتری بدا شد 100 تا مشتری صد تا مشتری رفتن هر ده تا مشتری شد هزار تا مشتری هزار تا هر رفتن یه دفعه یه کسی یه یه مثلا بگم یه میشه طلا داره برای یه شمیشه تلایی که داره میبینید چقدر مشتری پیدا کرده هزاران نفر مشتری هیچ معامله صورت نمیگیره من مشتری مشتری بیدا میکنه مشتری مشتری بیدا میکنه درصد میگیرن درصد بازاریابی اگه به شما به عنوان فقید بگن حکم مسئله چیه شما میگید خوب این مسئله ای نداره من برم بازاریابی کنم به من تخفیف بده منفردا هر کدوم از عملیاتو میبینی مسئله ای نداره ولی مجموع عملیاتو مجتعا که میبینی میگی منفردا هر کدومش بیه ولی مجتعا که نگاه میکنی میبینی روح و اون ذات بی درش نیست این اکلمال مال به باطله این فریبه این حقبازیه این قماره فقیه میره عدله قمار رو میبینه یعنی روایاتی که ما راتی به قمار داریم همه روایات رو میریزیم بسن نگاه میکنیم در این روایات قمار به چی کرده. قمار الان یه سآل از شما میکنم قمار موضوع عرفیه یا موضوع شرعیه یعنی قمار رو شاره تحسیز کرده یا قمار امرو اقلایی قبل شاره معنای معنایی براش موجود بوده موضوع عرفیه یا موضوع شرعیه هایش که عرفیه, عرفیه دیگه چون همه نظام های حقوقی دنیا یه چیزی به عنوان قمار رو میشناسن شاره تأسیس نکرده ولی شاره ممکنه در مفهوم قمار یه قیودی رو عقص کرده باشه ما میریم عدله باب قمار رو نگاه میکنیم از اون طرف اینی هم که در خارج داره اتفاق میفته میریم اینو مطالعه میکنیم آقا شما چیکار میکنید این چه نوع معامله ای است این آقا چیکار میکنه آقا چیکار میکنه چی میفروشی جنسو تعبیر میدی یا جنسو تعبیر میکنه میگه آقا جنسو خودم هست فقط تو مشتری پیدا کن مجموعه اینا که نگاه میکنی میاییم عدله باب قمار رو میذاریم رو سر شکت های هرمی میگیم آقا عدله باب قمار بر این معاملات منطبقه یا اینکه که میگیم این معاملات مندرج تحت عدله قماره ببینیم این انتباق و اندراج شما عرض کردم که دلیل یا عقلی یا شریع ادله شرعی عمدش لفظیه عدله لفظی عمدش زهوراته هنر فقی در تشخیص و به حجیت رسوندن زهوره و این تشخیص و به حجیت رسوندن زهوره که در بعضی از مسائل اختلاف بین فقها رخ میده چون ظهورگیری زورگیری کجاست؟ در انتباق و در اندراجی در اینجا اتفاق میاد خب حالا میاییم سراغ گام هایی که من شمردم هم در مقاله موجوده هم در کتاب موجوده میتونی باییم ما الان مسئله مستردسته رو میخواییم حل کنیم گام اول قدم اول چیه قدم اول سلوات دفرستید <تصفيق> هست یا خستم اگر یه وقتی کسی خسته است میتونه بره چای بخوره بیاد شما سر کلاس بشینید چرت بزنید فایده ای نداره برای برید یه چای بخورید بیاید بقیه, بقیه کلاس رو درک کنید بهتر بازم صلابات رو پسید باید گام های حل مسئله مستدسه چیه؟ گام اول قدم اول موضوع شناسی هر مسئله که شما میخوایید حل کنید اولین چیز در مسئله مستدسه در غیر مستهدسات هم همینه ها حالا یه بحث دیگه یه هم من باید بکنم که تفاوت روش شناسی اشتها در مسئله مستدسه با غیر مستدسه مستدسه با غیر مستدسه فرقی نمیکنه. کنه اشتهاد دیگه روی مطا در مستدسات خصوصیاتهس یعنی یه دقتهایی های عرض کنم که توجهاتی اضافه لازمه موضوع شناسی همه جا لازمه همه جا چون حکم منصب بر موظعه حکم روابات وجوب این وجوب کجاست و فروضگاهش رو پیدا کنیم موضوعش بر حرمت حرمت فروضگاهش کجاست و از فرودگاهش معلوم بشه ملکیت حکم شرعیه ازا اقا وزیرم در زمین. شرطیت آقا من قائلم به شرطیت یعنی چی من به شرطیت شرطیت چی برای چی شرطیت یه جایی باید بیاد فرودگاه باید داشته باشه جزئیت من قائلم به جزئیت جزئیت چی برای چی باید فروتگاه داشته باشه. همینجوری چه احکام وضعی چه احکام تکلیفی حرمت بوجود باید اول موضوع مشخص بشه چون احکام شرعی منصب ببر موضوعات هم بنابراین در مسائل مستحدثه اول باید موضوع شناخته بشه خب حالا میادم تو موضوع شناسی موضوع شناسی داستانیه موضوع شناسی داستانی بعضی موضوعات عقلی هم بعضی موضوعات غیر مثلا شما میگید که تکلیف به محال محاله الان تکلیف به محال مثلا اجتماعی نقیزه این محاله این محالو آوردی روی چی؟ اجتماعی نقیزه حالا میام تو شرعیات میگی ضرب یتیمه حرامون این حرام اومده روز ذربالیتی حالا اگر موضوع خود موضوع موضوع عقلی باشه مثلا تکلیف تکلیف العاجز تکلیف العاجز لا ممکن محال قبیحون تکلیف عاجز بشه این الان موضوعش چیه تکلیف آجزه مثلا کسی در نماز نمی تونه نماز بخونه، کسی نمی تونه بگیره. محال کسی که نمی تونه بگیره مکلف به بزو باشه. قدرت ورتش قدرت شرط در تأکیدیه، شرط در تأکیدیه. یا اعلان شرط، یا شر شرطه شرط، یا قدرت عقلی یا قدرت شری. قدرت شرط، شرطیت قدرت در تأکیدیه قاعده از قویت مسلما. موضوعات تقریر رو بذاید کنار چون وقتی عقل خودش موضوع رو مشخص میکنه دیگه مسئله روشنه چون عقل تا موضوع رو قید و قیودش نفهمه کم و زیادش رو نفهمه و حکم نمیکنه در احکام عقلیه ابهام معنا نداره اجمال معنا نداره اطلاق معنا نداره اصلا ظهورگیری معنا نداره چون احکام عقلیه موضوعاتش عقلیه و عقل تا موضوع براش مشخص نشه حکم نمیکنه کنه بلیزا در احکام عقلیه قطعی و زنی و ظهورگیری و اطلاق و اینا معنا نداره اگر هم یه وقتی شک و تردید داشته باشید اخصه به قدر ما تیقن می اینو بزایی کنم بیاییم سراخه موضوعات غیرعقلی مثلا سلام، سم اعتکاف اعتقاف ادا و دیست الابتدا و به سلام الوفاء و بلعه تعظیم و تکریم و موضوعات چیه؟ موضوعات غیرعقلیه تکریم و العببین. این موضوعات یا حکمش مسرحه در یه دلیلی و که مسرح اونجا میگیم موضوع مسرح چیه مثلا شما میره اصول کافی رو میخونی در اصول کافی مثلا روایتی پیدا میکنی در اون روایت مثلا راجبه ارز کنم که راجب همسایه الجار نوشته همسایت و باش اینجوری معاشرت کن و فلان کنچگاه کن راجب حق پدر و مادر یه دوارد. راجب امام. اطاعت از امام واجب، راجب امام یه بحثایی میاده. موضوع مسرح. ولی گای موقع ها موضوع حکم شرعی در دلیل مسرحه. ولی اونی که مسرحه موضوع واقعی نیست. یه موضوع مسرح داریم یه موضوع واقعی داریم. مثلا شما میری دکتر مریضی میگه آقای دکتر من مریضم ولی خورما خیلی دوست دارم خورما بخورم دکتر میگه نه خورما نخور الان حکم منع طبیب تعلق گرفته به یه موضوعی به نام و این موضوع مسرحه ولی موضوع واقعی ممکنه از یق از این باشه یا اوسع از این باشه. دکتر برای چی به تو میگه؟ روتب نخور چون قند داری. قند داری؟ قربزم نخور. قند داری؟ شکرم نخور. تعمیمش میده. یا اینکه شما میگه آقا یه نوع. روتب رو باردن تو کارخونه فناوری کردن قندش رو کنترل کردن یا یه نوع خورمه از خورمه هایی خوشک زاهدی قندش پاینه اونا رو بخورم میگه بخور یعنی وقتی که بهش یه مقداری میپردازی متوجه میشی یه چیزی در لسان دویر به امان موضوع بهش تصریح شده ولی یه است که به طور واقعی موضوع موضوع واقعی ممکنه اوسع یا از یک از موضوع مصرح باشه بنابراین وقتی ما صحبت از موضوع شناسی میکنیم موضوع شناسی در دو سطحه یکی اینکه شما میری ادله رو نگاه میکنی یونی در عدله چی موضوع قرار گرفته در عدله چی موضوع بعضی از اونایی که موضوع دلیل قرار گرفتن خودش م... خصوصیت داره ولی گای موقع خصوصیت نداره حالا نمونه شناخته شده برای شما که ملموس بگم برای تو مطلب روشن بشه تا بگم برای تو مطلب که چون ز... قنص ذهنی دارید برای تو جام میفته مسئله و به آلات شترنگ لعبه به آلات شترنگ موضوعش مسرح هست یا نیست مسرحه دیگه روایاتی داریم راجع به روایات رو برو بیمین خیلی نه کرده چرا الان بعضی از آقایون میگن بازی شترنج مشکل نداره اختلافش ناسیه اینه که دسته اول که میگن شترنج حرامه حرامه حرامه حتی در این زمانم حرامه اونا میگن اون موضوع مسرح خودش خصوصیت داره ولی دسته دوم مثل امام آقای خانساری آقای دیگه آقای این دیگه میگن شترنج مسرح هست در لسان دلیل ولی ازش تنقیه منات کن تنقیه منات کن یعنی چی؟ میگه شطرنج در یه زمانی بازی فساق و فجار و زلمه و ارز کنم سلاتینی بوده که ارتباطی با دین نداشتن این بازی مودل سبک زندگی فساق بوده کی با این بازی میکرده کسانی که دشمن اهل بید بودن گفتن شما ای ای فرا اصلا دست نزنی یا دست به این بزنی اینگار که از خوک و خنزیرم نجستره دست نزنی فلانه نه کردن نه, کردن، نه کردن؟ به خاطر اون جب و اون فضا بوده یا باهاش قمار بازی میکردن ولی فی زمان نهازا هم از اون فضامون قطع شدی هم از آلات قمار بودن خارج شده الان شده یه نوع بازی فکری آیا چی میگن،, میگن موضوع مسرحه ولی خصوصیت نداره موضوع واقعی چیه؟ تشبه بالکفاره یالا یالا عجب از اللعب و شطرنج وارد شدیم از تشبه بالکفار خارج شدیم یعنی اللعب و به شده چی؟ حرمتش از باب تشبه به کفاره یا حرمتش از باب آلات قماره یا حرمتش از باب التشبه به اعداء اهل بیت التشبه به اعداء دینه یا از باب ارز کنم که مثلا لحو لعق منهیه لحو لعق مطلقا حرام نیست بعضی از لحو لعقا منهیه حرامه یه موضوع مسرح داریم یه موضوع باقیه یه موضوعاتی خب بعد از این تفکیک اولین دو تا صد در موضوع شنست بعد می امتراغه موضوع شناسی حالا موضوع رو فرض کن ما الان برفتیم موضوع واقعی الموضوع ال الموضوع الحقيقي الموضوع الواقعي الموضوع حقيقا قد يكون مصرحا قد لا يكون مصرحا یعنی اونی که به تسریح شده باید چیکار کنیم باید یه تجرید و تعمیمی بکنیم باید یه القای خصوصیاتی بکنیم به راهی بعد بریم تا به موضوع برسیم به موضوع برسیم این یه task مصرح بریم. یه تقسیم که موضوع گوی مقا شرعیه، گوی مقا عرفیه. صلات موضوع شرعیه، حج موضوع شرعیه، اعتکاف موضوع شرعیه. اکثر عبادات اینجوریه، موضوعش شرعیه. قرائت القران موضوع شرعیه دیگه. قرائت البته عمومیه، قرائت قرائت ولی تعلق به قرآن که می‌گیره موضوع شرعیه، موضوعات شرعیه. یعنی چیزایی که شاره فایگوزن مثلا البوکاء و علی الحسین علیه السلام موضوعش چیه شل. اقامت المعاتم محتم معاتم اقامت العذاب علا سجده نساء العالمی عالمی موضوعش چیه شرعی دیگه اقامت کنه ولی بعضی موضوعا عرفیه مثل چی مثل احترام اهانت دی ادبی و ادبی تعظیم، تحقیم، توهین، استهزان صبح، شر، گلوب، روش ارز کنم که احسان، خسنت، جود مثلا میگه آقا آدم جود داشته باشه جود در اسلام حکمه چیه؟ وفای به اه اینا موضوعات چیه؟ ارفی موضوعات ارفی دو موضوع عرفی محض موضوع عرفی غیر محض موضوع عرفی محض یعنی شاره توش دخالت نکرده مثل آب آب من وضوع باید با چی بگیرم؟ با آب باید وضو بگیرم دیگه حالا شما یه لیوان پر می‌کنی، از رودخونه میاری؟ میگه آقا با این آبه میشه وضو گرفت نگاه میکنه میگه سیلاب اومده او او او چقدر خاج قاتش شده چه رنگش اینجوری شده میشه بوزو گرفت یا نمیشه بوزو گرفت فقیر چی بگه یه کاسه پر آب میکنن رودخونه بیان از جال فقیر میذارن میگن اما ما با این بوزو بگیریم با این بس کنیم میشه یا نمیشه فقیر چی بگه موضوع عرفیه یا شعریه عرفیه عرفیه محضه یا غیر محضه محضه چون ما هیچ دلیلی شما نمی کنیم، هیچ آیه و پیدا نمی کنیم که شاره در موضوع آب دخالت کرده باشه بگه من میفرسم آزمایشگاه اگر سختی آب نه درجه باشه میگم آبه اگر نه درجه بیشتر باشه میگم مضافه دلیلی ما به می مراجعه میکنیم ببینیم در ادله، در موضوع آب شاله دخالت نکرده یعنی تماما مکول به عرفه هرچی که مردم میگن آب آب دیگه هرچی که مردم میگن مطلق و بچهل عرض برای سجده کن آن آره میره موزایک میاره آب موزایک میشه سجده کن فهمه عرفی میخواد موزایک مطلق و بچهل عرضه آن گچه از دل کوه کشیدین بیرون خیلی سفیده ایک زمین نیست یا مثلا سنگ عقیق رو کشیدیم بیرون این سنگ یا جواهر مطلق و ارز عرضه یا خصوصیت داره این آدم شک میکنه یه جایی پخت شد چی؟ کوزه چی؟ به کوزه میشه تیمم کرد به کوزه میشه کوزه رو به توبیم آردش کنیم به اون آردش تیمم کنیم میشه نمیشه ببین شاره دخالتی نکرده در مطلق وچل از در تراب در ما. حالا اینا مسادیق اینی حالا از مفاهیم بگم احسان احسان اما امسا کن به معروف روش زن داری تصریحون به احسان اگه زن تو نگر میداری معروف نگر داری اگر با هم سازتون نمیگیره میخوای طلاق بدی تصریحون به احسان شکنجه نده ازید امسا کن به معروف معروف چیه؟ معروف یعنی من الان خانومم رفته دادگاه شکایت کرده آقایشون نفقه منو نمیده خرجی منو نمیده منو خوب نگه نمیداره دادگاه میخواد براش نفقه تعیین کنه باید به معروف تعیین بکنه معروف معروف چیه؟ عرفیه دیگه شاره دخالت نمیکنه شاره نمیاد بگه که معروف یعنی اینکه مثلا اینی اگرم گفته با عنوان اهد از عرف گفته راهنمایی عرف کرده ارشادی گفته ولذا معروف تهران با معروف سیستان با معروف اردبیل با معروف اهواز فرق میکنه. بعد تازه شما شید چی باشه. شما طلببه خانم که با شما ازدواج کرده حواسش بود من دارم پای طلبه ازدواج میکنم. اون رفته با یه پروفسور کرده اون رفته از یه خانوم از سطح بالا گرفته اون یه خانوم عادی گرفته ببینیم معروف موکوله به عرفه عرف در مسئله حاکمه به حسب شخصیت زوج، زوجه، محیط مناسبات بنابرای حقیم کنه البته در جایی که موضوعات عرفیه اگه تو ر... ر... چیز این استفزاعت آقایون میبینید که مثلا مرجع دخالت کرده چون در همین موضوعات عرفیه گای مقا مرجع میشینه عرف شناسی میکنه تنقیه حکم عرف میکنه به عنوان احدی از عرف صحبت میکنه از این بابه یا موضوع موضوع عرفی غیر محضه موضوع غرفی قیده محضر مثل چی؟ مثل چقدر وقت داریم؟ هشت و نیمه آقا مدیر جلسه کیه؟ شمایی؟ تا ساعت چند وقت داری؟ ده دقیقه دیگه؟ ببین موضوعات عرفی غیر محض خوب توجه کنی مثل صبح نماز صبح بخون صبح که الان توی هر جای دنیا بری بگی صبح یه فهم عرفی از صبح موجوده ولی عرفا با هم متعارزه یکی میگه آفتاب بیاد بالا صبحه یکی میگه هوا روشن بشه صبحه یکی میگه سپیده بزنه صبحه شاره اینجا دخالت کرده گفته این به این حد خورشید رسید من میگم زوال اینجا رسید میگم صبح اینجا رسید میگم نصف شهر ماه به اینجا رسید میگم ابتدائه. ابتداء و شهر سن به اینجا رسید میگم البالغ شرعن متوجه اومده شاره تهدید کرده تهدیدات شاره در موضوعات عرفیه به معنای اینه که موضوع عرفیه غیر محضه قایش قرفیه قیود شرقیه قیود شرقیه قومی در موضوع شناسی الان دیگه متعلق. گام دوم تبدل موضوعه موضوع یه امر ثابتی نیست موضوع با این موقع متبدل میشه چرا؟ به خاطره که الاحکام تابعتان للعنابی الاحکام تابعتان مثلا سله رحیم شما شنیدید دیگه سله رحیم خب. سله رحیم تو زن مردم میاد که آقا برو به فامیل سر بزن ما یه فامیلی داریم شمال تهران جای خوبی وزش تو هوای خونک که پول دارم هست بچه ها جمع کنید. هوای خونه گرمه بری پونش خب. بری خونه اونجا بریز و بپا سه روزی جاوش بند خدا کلافه میشه اونم کار داره این ظاهرش سله رحمه ولی یه عنوان برش آرز میشه موضوع رو عوض میکنه میشه ایزا المهمه از سله رحم میره بیرون تبدیل میشه به چی؟ ایزا ببین یه،, یه فعل خارجی داری فعل. مثل این که من مثلا دست میکنم در جیب خودم یه پاکت پول در بیارم خدمت حضرت علی تقدیم میکنم حکمش چیه از امام جواد یاد بگیرید امام جواد در اون مناظرش با یحیی بن دیدید که گفت یه زنی بر یه مردی از یحیی سوال کرد خیال عالم کنی مثلا ثبات داری اون اینجا مثلا مقابل امام میخواد مسئله من بپرسی یه زنی بر یه مردی حرامه یه زنی می‌گذره حلاله یه زنی می‌گذره حرامه یه زنی می‌گذره حلال حرامه حلاله حرامه, حرامه. حرامه. حلاله, حلاله یک زن بر یک مرد هفت بار هشت بار صبح حرامه چاشت حلاله ظهر حرامه از حلاله مغرب حرامه عشان حلاله نصف شب حرامه چیه؟ از اون یاد بگیرید الاحکام تابه اتون لل انابین احکام تابه انابینه وقتی من به شما میگم یه پاکت از جیبم در میارم خدمت عزت حالی تقدیم میکنم پاکت پول وکمش چیه؟ شما نمیگید وکمش چیه؟ شما اگرم توی محراب نشسته باشی یه کسی بیاد ازت از سال بکنه میگید بابت چی ادای دین کردی ببه ببه زود ادای دین کردی به وقتش بوده واجب بوده قبل از وقت اونم تازه تشقیق مون کنه میگه ادای دین قبل وقتش بوده مستحبه تسریعه در ادای دویون به وقتش بوده از بای وفای بعد لازمه اما ادای دینش هم دوتا میشه از باب سله بوده مستحبه از باب سمن بیعی بوده که انجام دادی حال بوده یا معجل بوده از باب حواله بوده این آقا از اون پول میخواسته اون به من حواله داده من بهشون دادم از باب گفته بیا با هم دیگه سرمایه گذاری کنیم یه کارخونه باز کنیم مشارکت کنیم من گفتم بفرمای این سهم من برید سرمایه گذاری کنید ببین الاحکام تابعتون للعناوی وقتی ما میگیم موضوع شناسی یعنی ذات نگار رو این تو بحث فقه حکومتی خیلی مهمه این علمایی که میان برای شما بر اساس مستنداتم میگم به حرفاشون توجه کنی این این یک کلید اساسیه یک کلید اساسیه شما رفتی تو مسجد نماز خوندی یه دفعه آقا اومد و ازان گفتن و اقامه جماعت شد و قدقامت سلام الله اکبر شما داری یه بیرون من آقا عجله دارم برم فرانجا یکی میخواد وارد بشه میبینه نماز جماعت برقا شده آقای فلانی نماز خوره یه آقای وجیه ملت بدین اعراض از جماعت داره داره میاد بیرون اگر تلقیه از فعل شما این باشه که تعریزی داری به امام جماعت فعل تو حرامه اگر ازش تعریز استفاده بشه اگه تعریض استفاده نشه مثلا یه گوشهی گذاشتن یه سکویی گذاشتن برای مسافره ها و که عجله دارن اونجا نماز میخونن از اون سوال ماشه میشم میرن تعریز نده ببین شما در یه امر شخصی شخصی شخصی عنوان رو فعلت بیاد عنوان باید لحاظ کنیم تلقی مردم از فعل خود رو باید لحاظ بکنیم مثلا من مال دارم پول دارم پدرم سرمایدار درجه اول بوده ولی الان اگر ماشینی که رو قیمت چند میلیاردی رو سوارشم تو خیابون با این امام بشت فرمون رانندگی کنم و از کنم لباس های فاخر بپوشم، مردم میگن ببین نه؟ الذین مردوم بیچاره رو گرفتار می‌بینن اینا. اینا هستن که مال مردم رو خوردن ازش چیه تلقی ازش توهین به اسلامه اهانت به روحانیت میشه در صورتی که ذات عمل قل من حرم ازینت الله الی که اخراج العبادیات تا من ال ذات عمل اینه ولی عنوان آرز درش فقد کرده اون فقه و حکومتی که میگن اینه یعنی اناوین رو باید لحاظ بکن پس در موضوع شناسی قم دوم تبدل موضوع اناوین حاکم بر موضوع کشف ملکات هم هست اونم نگاه بکنید گام سوم گام چهارم اناوین ثانویه طبیعت موضوع یه چیزیه های خاص یه چیز دیگه است حالت های خاص مثلا الان با منکرات باید مقابله بشه مهمید اجرای حدود هم باید بشه یعنی الان خیلی از این منکراتی که در خیابون اتفاق میفته اینا هی شک و شبهه ندارید میشه طرف بگیرید شلاق بزنید ولی ما چرا دست کشیدیم به خاطر عنوان سانبی. یعنی قدرت رسانه ای سیاه نمایی سبب میشه که ما بعضی از حدود رو تحتیل کردیم لزروره بعد یعنی میگه آقا حدود که تحتیل نمیشه یه حد اجرا بشه از هفته آدون زمنان بارون بالاتر و میگه آقا اینا رو همه ولی اصل اسلام در خطره طرف به اصل دین بدبین میشه وقتی به اصل دین بدبین میشه یه عنوان سانبیه قمزنی فی حد نفسه مشکل داره من یه جوابیه خیلی خوبیم هم سال بیش برای یه نفر که خیلی ادعای بحثه علمی میکرد یه جوابیه خیلی خوبی نوشتم یه جایی چاپ شد حالا شما فرض کنید قم زنی فی حد نفسه به خاطر که بعضی از علمای قدیم فتوا دازن و اینا جایز باشه فرض کنید ولی عنوان سانوی روش اومده عنوان سانویش چیه؟ عنوان سانویش اینه که وقتی این سحنه ها در کشورهای غیر مسلمان که با فرهنگ اسلامی آشنایی ندارن منتشر میشه هیچ ارتباطی با دین نتنها پیدا نمی بلکه به شدت متنفر میشن یه قاعده میاد رو مثله قاعده قرمت تنفیر از دین نباید بذاری مردم دین نفرت پیدا کنند. همه زنی باعثه میشه تحتیلش کن حتی اگر فیدن نفسه مصداق زدجه باشه که من قبول ندارم مصداق زدجه نیست حتی اگر مصداق زدجه باشه آقا جوری دیگه زدجه بزن جوری دیگه نشون بده ازارو این به لحاظ اناوین سانوی داستانش شونه بعدش میایم گام آخر اصول عملیه آقا دستت از هر دلیلی هم خالی باشه خدا برکت بده اصل براعت خدا برکت بده اصل احتیاط در دماغ و اموال و اعراض و نفوس و اینا قاعده داریم اصل احتیاط رو اجرا کن اصول عملیه فقیق دست خالی همه اینا به جای خودش یه گامه دیگه داریم من توی مقاله اول آوردم ولی الان تو بحثام آخر میارم چون یه مقداری ذهنتون ازش دوره اون بحث مقاسبه فقه مقاسدی بعضی ها میگن در شیعه داریم نداریم محل بحث و گفتگوه ولی به معنای صحیحش حتما در دین داریم چرا؟ چون فقی حتما باید ملاکات احکام رو سبب کنه حتما باید ملاکات رو سبب کنه همین الان مقام مرزم روی داریم کار میکنه دیگه مجموعی تشروز مسئلات هم گذاشته به عنوان مشابه آقا بشید بررسی کنید فلان مسئله شرحن اشکال داره ولی اونا میگن ضرورت داره چیکار سباک سنگین کنید مثلا فرهنگ با اقتصاد اگر با هم تضاهم تز... باب تضاهم رو شما میشناسید در اصول فقه یه بابی داریم به ما باب تضاهم باب تضاهم در اصول فقه ما آدرس داره یا نداره یه تا کلمه میخوام بگم تو بره ها یه چیزی پایه باب تزاهم توصول فقه ما داریم یا نداریم آدرس داریم یا نداریم باب تزاهم یه چیزی درش هست به نام مرجعات باب تزاهم این مرجعات باب تزاهم کد فقه مقاصدی ماست فقه مقاصدی ما کدش اونجاست یعنی همه فقه ها توجه به مقاصد دارن اون مدل مقاصدی که بعضی همه هم نمیگم. بازی از اهل سنت بهش پرداختن که ظنی است و حدسی است و رو به طریق قاطع کش نمی‌کنه اونو ما معتبر نمی‌دانیم وگرنه خب شکی نیستش که باید مقاصد و ملاکات دینو مرتب کرد به تعبیر به تعبیر روشن وقت تمام شده میگیم اهداف دین، اهداف درجه یک، اهداف درجه دو، اهداف درجه سه. وقتی اهداف اهدافو ترتیب دادیم، یعنی اگر نتونستیم همه رو با هم حفظ بکنیم، اهداف درجه دو رو قربانی اهداف درجه یک میکنیم، اهداف درجه سه رو قربانی اهداف درجه دو میکنیم. واس salaam alaikum و بله موضوع اکل رو تبذارن از حیث تقیی نه و تقیی با این حال میتوانا برای موضوع شنید درد میشه مثال. علت تاخیر در حل مسئله مستدسه چیه مثل رمز ارزها ها معاملات اینترنتی علتش اینه که وقتی میام کشه علماء علماء نمیدونن اینا دارن چی کار میکنن تنقیه موضوع زمان میبره خود این, خود این آیانی که رمز عرض و مدرک کردن اینا رو تو تلویزیون دعوت کردن متخصص رمز عرض نیم ساعت صحبت کردیش که نفهم چی میگه دو نفر با هم بیگه صحبت بکنن این حرف اونو نمیفهم، نمیفهمه اون حرف این رو نمیفهمه بعد حوضه چی بگه مشکل ما اینه شما دیدید آقای جلیلی یه مناظره گذاشت طرفداران سم و کود طرفتار اصلاحی اصلاح جنتیک اینا می گفتن اصلاح جنتیک میکنیم کنیم سموکود به اونها اونا می گفتن اصلاح جنتیک تغییر ماهیت میده ده خوراکی ها رو میخورید خورید سرطان می سم و به طورت طبیبا با هم کلی مناظره کردن آخرش به جایی نرسید یعنی الان به ما میگن آقا اصلاح جنتیک محصولات تراریخته حکم فقیش چیه؟ چرا فرقیه نمیتونه جواب بده؟ چون هنوز راجع به محصولات تراریخته آفاقش، تأثیراتش عوارزش عوارز بلند مدتش خاک میکنه، آب رو میکنه با معده ما میکنه هنوز ناشناخته است. من که خودم خیلی مخالفم خیلی راه خطرناکی میدونم این مسئولات تراریخته صداش بردن در میان در مسائل مستدسته راه یقین به تنقیه مناتی تنقیه منات توضیح دادن به این کتابیه. کتابی کتابیم چاپ شده به نام فقل مسائل مستدسته آقای عباس موسوی لبنانی من نازرشم بودم اونو نگاه کنید رازی به تنقیه منات خیلی خوب بحث کرده مسال مستدسته خیلی روشنه الان طبقه مطالتون 90 درصد درگیر و زبار هستم من که خطت خیلی خط بدیه مستدس هم نوشته مقدسه خب میدونید یه سوالی کرده این سوالش به چی برمیگرده یه ریشه درستی این سوالش داره اینه که ما میگیم 95 درصد مسائل از طریق نصوص به دست میاد ولی شما میگید آقا پچهار مطلی مطالع مثلی فصلی میگید مستدسه اگر همه در نصوص هست خب بس منصوب هست یا مستدسه ای با میینه جوابش این بود که گفتم به خاطر اینکه انطباق و انترات صعوبت دارد اون جایی که انطباق و انتراج روشنه مثلا یه دوری اتفاق میفته آقای قمار دیگه اینو همه میدونن این قماره برای یه چیزی که معلوم نیست قماره قیافه حق به داره آدم نمیتونه بگه اینا دارن قمار بازی میکنن اونایی که اندراج و انتباقش روشنه اونا رو ما نمیگیم اونایی که انتباق و اندراجش روشن نیست اونا رو درباره در باره زورگیه در شناسی زورگیری رو نگاه بکنید من بحث زورگیری رو تو این کتاب نگاه کنید بخش ذوالحگیری تقسیماتی که برای ذوالحگیری گفتن یه روش جدیدی به کار بردم تقسیمات ذو ای تقسیم اول تقسیم دوم تقسیم سوم تقسیم چهارم تقسیم پنجم تقسیم هشتم تقسیم دهم ده ببینید چه دنیایی داره ذوالحگیری به آسونی نیست چند استاد درس خارج معرفی کنید من نمیتونم استاد معرفی کنم چون یه مقداری ارتباطم با اساتید جدید یه مقداری فاصله افتاده قطع شده بعضی استادای خوب اومدن ولی درس باید روون باشه درسایی که خیلی معماگونه است خیال نکنید چون معماگونه است اولین درس خیلی عالیه ببین فقی مسئله حل میکنه کسی معما درست میکنه هنر نیست حل مسئله مهمه هی hey, اشکار شو مناقشه فلان برم خوب چی شد آخرش حل مسئله مهمه درسای خارج اینو توجه کنید درس باید روان روشن واضح باشه معلوم باشه به چی نتیجه این میرسه آیت الله خویی رحمه الله من که درسش نبودم بلی ندرسی ها تعریف می 20 دقیقه تا 25 دقیقه درس می الان هم تغییرات آقای خویی رو شما ببینید بهترین تغییرات. انقدر درسه ایشون روشن، روان قشنگ مرتب، منظم آدم می خونه و چیه اساتید جدیدی هستن خالدی استعاده که ولی معمولا بازم این یه ملاک یه ملاک دیگه معمولا اساطیدی که آثارشون منتشر شده و به آثارشون کار کردن بیتره استادی که خودش یه مقداری دست به قلم باشه مثل مثلا آقای قایی المفسود رو نوشته ما هم از المفسودش استعاده کردیم آدرس هم داریم استادی که یه دستی هم در پجروهش داشته باشد، نوشته باشد، مقاله داشته باشد، مکتوب داشته باشد، تقریر داشته باشد، یه مقداری بهتر. فقیه موضوع شناسی ببین فقیه که ما میگه موضوع شناسی می در موضوعات شهرگی که فقط فقیه. مثلا، بیتوته یه به منا. مردم میتونن راجعش حرف بزنن؟ کام میغاد شک که در تواف مردم چونکنن را دوچرد بزن موضوع تمام شعریه فقط فقط موضوعات عرفی محض فقیح احد عرفه موضوعات عرفی غیر هم که حتما باید جواب بده مثل همین اختلافی که الان وجود داره که با تلسکوپ اگر ما رو دیدیم که باید میکنه یا میکنه جا برم مردم پست مردم چه میفهم؟ در صورت یک آدم خوش خط رو اینا من ندیدم. چرا خطاتون در صورت امکان. امکانش میشه اعلام بخونی. به چند جور میشه خون. در صورت امکان در که یک از مسائل موضوع شناسی تطبیق بفهم. چند تا تطبیق گفتم و من خیلی راحت و رغون صحبت می کنم. شما خیال می کنید به همین راحتی و رغونیه. یارا نوث ار دوه بالقواغیر صافیا ولایت رون ما یسی علی راس سیسی روغن رو تو شیشه صاف می‌بینی نمی‌دونی چی به سر کنجت اومده چقدر تو سرش کوبیدن تا این روغن صاف شد چقدر ما چکش داریم تا مدرم این دوری برای ساده گفتم یا قبول کردیم اصلا ساده بود نه خیلی دوست پشت بند داره فرق تبدیل موضوع اناوین سانبی چیه مرادم از اناوین سانبی زرن، حرچ و ماند این هاسترار ایناس ولی تبدل موضوع در غیر این عناوین مراد منه. مورد مثل اون کتاب عنوان ثانویه آقای کلانتری دیدید که عنوان اون کتاب خیلی خوبیه. عنوان ثانویه آقای کلانتری. اونجا نگاه کنی عناوین ثانویه یعنی حکم اولی سرجا خودش حسا عوض نمیشه حکم اولی هست مثلا ارز کنم شبیه‌سازی حکم اولیش چیه حکم اولیش اهل سنت میگن حرامه مساق تغییر خلق خلقته علمای شیعه مشهور میگن جایزه شبیه‌سازی ولی همین علمای شیعه که میگن جایزه میگن عنوان ثانوی روش میاد عنوان ساهمی چیه؟ اختلال در نظام نصب در نظام عرض در نظام محرم و نامحرم چند تا نظامات داری در اطراف انسانه اون نظامات همه مختل میشه به جهت اختلال در نظامات لایجوز به جهت طبع موضوع یجوز به جهت اروز زرد اروز فلان به جهت اون عنوان ثانبی آرز میشه. ولی تبدال موضوعی سک میره در نمکزار میشه نمک شرط اصلا موضوعیت نداره دیگه موضوع اجاب مثلا زن مکشفه امر ممکنه. باید باش برخورد کنی ولی از باب استرا از باب رعایت امر اهم من نمیتونم متوجه مثلا اینکه شما یه نفر داره غرق میشه یه نمازام نمازتو ول میکنی میگه یه نفر رو کن بودی یه چیزی مهمتر از اون ممکنه باشه در تظاهومات رعایت اونها رو میکنی در مسئله تبدل موضوع گایی موقعها مثلا الان کشف هجاب هایی مثال خیلی خوب بزن کشف هجاب در زمان نهازا اصلا موضوعش مبدل شده موضوع چی اقتشاشگریه اصلا کشف هجاب نیست اصلا این به امانه پدیده اجتماعی این یه حرکت ضد نظامه در سطح عمومی ها. یعنی سیاست بزار اینو باید به عنوان محاربه ببینه در حد محاربه است فردی نمیگه ما این خانم داره محاربه میکنه اون داره در سطح کلانشو میگه تبدال موضوع شده این شده ابزار جنگ و نظام این محاربه است و الحمدالله و رویت حلال چی بوده؟ رویت حلال چی بوده؟ جواب نردم کسی از روش بگم ترتیب همین به ترتیب دارد همین کسی